شبیخون نسازند گمدابران کسی کو گراید به گرز گران یعنی کسی که آین پهلوانی رو میدونه دور از او هست که خلاف آین پهلوانی بکنه و شبیخون بکنه جان. یک داستان از پهلوانان ایران هست که این پهلوان زورخانه که در زرخانه ها خیلی مرشترادی؟ نه نه نه هزار سال پیش بود <مشتراوی> نامش بیادن میاد که از خارزم که شهر خودش بود آمد که به شهرهای دیگه به کشتی بگید ولی های ولی و رسید به شهری بعد از بود اول غروب و تو میدان شهر بودیدی پیرزنی داره حلوانی ده یا مثلا یه نظر نیاز میده بعد گفت که مادر جان این برای چی این حوار میدی؟ چه نیازی داری؟ و گفت تو نمیتونی نیاز منو برآورده کنی؟ فقط از خدا بخوا که نیاز منو برآورده برابرده کنه گفت حالا من بدونم اشکال نداره بلکه نیازت چیه؟ گفت چنده یه پهلوانی مثلا قلدوری از قهاره اومده اینجا بخواد با پسر من که پهلوان اینجا کشتی بگیره و انقدر به زور خودش. بازو خودش مطمئنه که سر زانوهاش آینه بسته که این زانو هیچگاه به زمین نخواهد خورد اون وقت مخواهد با پسر جوان من اگر پسر من بخور زمین این مقرری که اینجا به ما میدن از به میره و بیچاره میشه پریاه ولی اون خورد گفت برو مادر جان امیدوارم خدا خواسته تو رو برابرد کن پردا هنگامو کشی شد چند چشم کشتی فند زرد تا مردم بدونن که میدونه ولی در یه جا خود زد زمین تا اون پیرزن زند با مرادش برسه میگن که در داستانو میگن که اون پسر که به زانوبند, زانوبند آهنی داشت میکوبید روی سینه پوری های ولی وقتی خود زمین و پوری های ولی میگفت بکوب بکوب چیزی که این شور و این حال رو به ما میده چنیدن از پهلوانی، از مردانگی در شاهنامه سراسر این رو میبینیم و اونجاهایی که آدم به حالا شما میفرمایید برای من ها میفرمایید هست این شبیخون نمیزنه جنگه شخی نیست بخواه پیروز چه یک سپا اما میگه نه نامردی نکنی بلد نامردی نواید بکن. و این همش درسه درسیه که تاریخ به میده و را را را را ما باید رعایت بخونیم ما باید میشنبیم فقط میشنیدن نباشه یه تحصیلی باید بگیریم از این سخنان. خواهی اون ایرانیان نجاده که دلو جان در رو مهر مادر میهند دادن از اینها تحصیل میپسرن یه پیامک هست آیا دکتر جانه درستان پیومک در اون جالبه حالا به دنبال این صحبتهایی که شما فرمودید به مطالبی که گفتید اه... درود بر استاد جنیدی من معلم هستم و دانش آموزانم را موظف کردم هایی که تکالیف عملیشان را انجام می دهند برنامه شما را گوش کنند بح بح. من قبلنم از یک آقای معترمی که طبیع بود در احواظ شنیدم و در یکی از برنامه ها گفتم این معلمشی که این تقومین معلم خردمند است که داره این بچه ها به این برنامه در قطع شنیدن برنامه ترقید میکنه امیدواریم که این مکتبی که باز شده همه گیر باشه در ایران به خدا دروز بر شما نهم آذر، آذر روز از آزرما جشن آذرگان خوجسته باد این آقا خشایار برمون فرسته خوجسته باد بر همه ایرانیان شاد باشید چه جشن این آزرگان؟ هر روز در ایران و باستان یه نام داشته روز نخست امورام روز دوم بهمن، یعنی اندیشه نیک که نخستین صفت خداوند بوده در فرهنگ ایران، خداوند با اندیشه نیک آفرینش رو ادامه میده و آغاز کرده و روز سوم اشابه که بعدا شد ارتبه در پهلوی و در فاسه شد اردیبهشت که ما حالا امروز به نادرست میگیم اردیبهشت. یه شعر هست از احمق بخاری که میگه خیزه بوت بهشتی و آنجام میبیار کردی بهشت کرد جهان را بهشت وار ببینید اینجا جناس لفظیه کردی بهشت کرد یعنی دو چیزی که در لفظ با هم دیگه همخان هستند اگر اینو میگفتیم کردی بهشت کرد میبینید که چقدر کردی بهشت کرد جهان را بهشت وار اردیبهشت بهشت یعنی برترین پاکی و راستی و زیبایی که صفت دیگر اورام که در این ها و کوه کوها و در این جنبش ها و در این دریاها و خروشان و در همه در جهان هستی این جلوه پاکی و راستی و زیبایی رو میتواندید همینطور هر کدوم از روزهایی که نامی داشته که روز نهم بود آذر و چون این روز آذر با روز با ماه آذر همخواام می شد اون رو می گفتن آذرگان جشن می گرفتن که اینکه روز شزا و هر ماه مهره در ماه مهر میشه مهرگان جشن مهرگان همطور اسفندارمزگان. گاه شماره خیامی وقتی که خیام و یارانش این کارو کردن و خیلی خیلی شکفتنگیز کار علمی بزرگ اونها که متوجه شد که چیش ماه نخصوص سال خورشید یک نزدیک به یک روز در برج ها میمونه از برج اول تا ششم. بنابراین این گاهشماری رو به این ترتیب اصلاح کرد امروز دانش گاهشماری تایید کرده کار از این خیام رو در حالی که گاهشماری گرگواری که به یک برداشت خیلی کودکانه از گاهشماری خیامی یا گاهشماری ایران و باستان بوده هیچ چنین چیزایی نداره و روزاش مثل ماهای قمری کم و زیاد میشه تو از نیمه شب یک نیمه شب زمستون آغاز سال خود مردم اروپا و یونسکو اینا متوجه شدن گفتن که اگر گاه شماری در جهان است، همانا گاه شماری ایرانه که درست در لحظه آغاز بهار آغاز میشه بنابراین این شیش روز در شش ماه اول که افروده میشه اون وقت شیش روز میبره عقبتر و یعنی روز سوم آذر. به تاریخ باستانی ما جشن آزرگان بوده ولی اشکال نداره که ما الانم هم هم بگیریم ولی خب اون کسانی که پایبند دانش های پیشین هستن و داده های پیشین هستن شش روز اینها رو عبتر میبرم من روستم خاصی هم هم آزرگان جشن آزره دیگه شب آزر شب ارمزد آماد از ماه دی یعنی آذر تموم شد یعنی شب اوله گه آتش سرخو مرگ بریان و می آتش و مرگ بریان و می اینی فردوسی گفته بالاخره جشن آتش در آتش کده ها حضور پیدا میکردن آتش عبروزی میکردن گرامی داشته آتشی که در حقیقت آتش و فریان هم یکی از اوناست یعنی آتشی که جان فریان یعنی که جان رو گرتن رو گرد نگه میداره چند آتش میگفتن یکی آتش و هفرایانه که در انسان و جانوران بود یکی آتشی که در چوب بوده، درختان بوده، یکی آتشی که در سنگ هست که میدونید باست آتشتنه این کار یکی آتشی که در آب هست، یعنی در حقیقت این عبرها که بله، بله، تندر رو آزرخش در آب و یکی آتشی که در جهان و آسمان ها بوده که همه آتش ها گرفته از اون هست. در این روز گرامی داشته آذر و گرمای تند و جان و روان و همه اینا بوده. با سلام زبان های چرق آسیا مانند چین ریشهشون زبان عوستاییه و بعد معنی گذار و گذار چیست؟ یکی با درزال یکی با رزه زبان های چین ریشه در عوستانه ندارن ولی خب در این گشت و گذارها یعنی کسانی که رفتن با خودشون واجه رو بردن ما میبینیم که ابن بسوتر در سفرنامه خودش که ابن بسوتر شگفترین شخص بود از یه حافظه بسیار قوی چون سواد اینا رو همه شنید و بعد برگشت به شهر خودش و یه دبیر گرفته اوننا رو گفت خیلی شریفتانگیزه که از رو حافظه اینا رو گفت گفت که ما در چین بودیم و یک امزاده روی قایقی بود که در هر خون یاگران براش می نواختن و یه آهنگ غریبی رو میخوندن که اممیزاده چینی به اون آهنگ خیلی در حقت حالش مقلب می شود و هی تکرار می و اون آهنگ شعرش این بود که تا در نماز استاده گویی به مهرابندری این شعر بایدن ما می بینیم شعر سعدیه. یعنی شعر صدی رفته در چین خونده می شده طوری که امیزاده چینی اون رو میپسندیده پسنده این ما باید بدونیم که نخستین و کتاب آموزش زبان پهلاوی که در جهان نوشته شده در چین نوشته شده اونا نیاز داشتن هم بوخی از کتاب های ما در چین هست اونا هنوزم چینی میخونن فارسی رو میخونن. در استان شینجیان شمار شماری تاجیک هستن که اونا به فارسی خیلی روشن صحبت میکنن و ایرانی هست حتی یک کوهی رو نشون میدن میگن کوه افراسیابه و بعد میگن آرش تیرش انداخت به پای این کوه درخت گیته بوده از اون کوب اون بر تورانه از این کوب این بر ایرانه تو چینه, چینه امروز هستن ولی جایگاه خود ایران میدونن و اینا باش گلستان فارسی میخوندن منطقه در این پنج و شهست سال توجه به این نشد گلستان نرفت و خب با اینا زبانشون فارسیه و به این ترتیب میبینیم بازم در سفرنامه ابن بطوتایی جا اماده که از پولی ما شدیم حالا به عربی جسر من جسر و بدان پول, پول سنگین می نامیدن. یعنی پول, پول سنگین یعنی پول سنگی ولی به عربی گفته. یعنی نام یه پولیه که با سنگ ساختن و فارسی بوده. به این ترتیب مراوضاتی که بین ایران و ایرانیان و چین بوده یه رو برده اونجا به همچنین در ژاپن، اما ریشهشون از زبان اوسترائین نیست. بخش دوم پرسوشیشون چی بود؟ گزار گزار بازه یعنی در گزارش کردن از بیچیر پهربی گرفته شده و گزار بازال گزار در حقیقت یعنی عبور کردن همون وی که قبلا من گفتم یعنی عبور کردن و رفتن به مسئول ببید ادامه داستان رو من پرمکه زیاد هست شما ادامه داستان تلفن های زیادی هم هست که حالا در یک فرصتی شما به صلاح دید خودتون مطلب رو به جایی که من پیامکان رو بخونم تو خیلی زیاد هستم دو تلفن ها رو پرشونیم خوب... پاسخ بدیم گفتار این که شبیه خون نسازند گندواران که ما در حقیقت به سخنان دیگه پرداختیم اینجاست شبیه خون نسازند گندواران کسی کو گراید به برز گران تو گرد با درنگی درنگ آوریم گرد روی جنگ است جنگ آوریم تو پیش فریبرز روحام گرد برون رفت و پیغام وی را ببرد. بیامد آمد تلایه به دیدش راه، از نام و از جایگاه به گفت روحام و جنگی منم، هنرمند و بیدار و سنگی منم. پیام فری برز به پیران رسانم بدین ره ز پیش طلایه سواری چو درد بیامد سخونها همه یاد کرد که روحام گودرز زن را از بیامد سوی پهلوان سپاه چو پیران برا دید بن وقتش بپرسید و بر تخت بن شاختش. بن شاختش یعنی بنشانده. مرا ورد روحام راز از پیام فری با او بگفت. چون گفت پیران. به راهان گرد که این جنگ را خورد نتون شمارد. شما را بودیم پیش دستی به جنگ. ندیدیم با توس رای و درنگ. کنون <سؤال> گر در تویی پهلمان سپاه چنان چون تو را باید از من بخواه. دریدون که یک ماه خواهی درنگ لشکر نیاید سواری به جنگ. برانید لشکر سوی مرز خیش. بدانید یک سر همه ارز چو آمد سر ما، و هنگام جنگ، زه پیمان بگشتند و از ناموننگ خروشی بر آمد زهرد و سپاه، برفتند یک سر، سوی رزمگاه، ز بس ناوله بوغ و هندی درها همی آسمان، اندر آمد زه جای نبود بر هوا مور را جایگاه، زه تیرو، ز گرز و زه گرد سپاه، درف شیدن تیغ علماس، گون، به کرده را آتش بگردندرون چون این گفت هومان به فرشید ورد که با قلب گه باید, باید نبرد هومان و هومان پهلوان تورانی بود برادر پس از پیران بود و پهلوان فرشید ورد این چون این گفت که باید محمله کنیم به سوی قلبگاه سپاهی نه چون این گفت مهمان به فرشید برد که با قلب گه جست باید نورد. برفتند پس تا به قلب سپاه، به جنگ فریبوز کاووس شاه، زهومان گوریزانت بشد پهلوان، شکستند در آمد به رزم گوان. ا اگر دکتر اگر صلاح میدونید تا همینجا داستان رو نگاه کنیم ادامه رو هفته بعد بشنویم بیاری از اون اگر تلفن چی شده با میده خدا بله تلفن ها هست و پیامک های زیادی که اومده و سوالات شده چیه سوالم برای من این سوالم برای من بود حالا به نوعی ورود در استاد جنید در مجری تماماً آیا میتوان کینگ خایه کی خسرو ناشی از ناخالوسی نژاد بودان است شیخ آبادی میناب نه که خسرو ناخالص نبود نجادش برای که نجاد تورانیانم به فریدون میرسی آه اون ریشه که تلم و تورو خب دیگه اونا رفتن و اون این خود رو پیدا کردن که مرافران جنگ میکردن و خب که خسرو هم در اون محیط ازاده شد میبینیم که موقعی که خسرو هم به پادشاهی نشست کابوس با اون پیمان بست که باید به خیشی اونک روی به خون به او نگربی و باید جنگ بکنی و کینه بسازی او هم داد رفت جلو مهلا و آتش و سوگند خورد که من از کین سر نمی فیچم خب تاثیر فرهنگ توران ممکنه باشه. اما نه نخواد لسیه دن شد بله خاش میکنم از استاد بپرسید بابه به چه معنی چند ساینت اینترنتی در مورد تاریخ ایران معرفی کنند با سپاس فراوان از همه شما صبا از صحنه پس این نگو صبابه گفته صبا به چه معناست خب با سین نوشتن خب با سین می نوشتن دیگه یه صبا هستیه که ملکه صبا پرقیس بوده نه یو نو عادتش زمینی بوده دیگه که با صادم می نوشتن با صاد صاد می نوشتن ولی با سین میشه گفت و هم. همین معنی رو داره و سایتوی اینترنتی رم من خواهش میکنم کنم تلفن بزنم بنیاد نیشابور از بنیاد نیشابور چون جوانانی که سایت بنیاد نیشابور دارن اونا میتونن راهنمایی کنن من خودم خیر از کتاب کاری ندارم و کامپیوترم هنوز تو باحال روشن نکردم <تصفيق> خب تلفن های شما آماده هستش بیشتر این تلفن ها رو من پیامک aram میخونم که اون بسیار زیاد هستش سلام. خاص نباشی. ضالم این هست که یه بگذاریم داریم اوایل شاهنامه به نام خداوند جان و خرد. که این برتر اندیشه بر نگذرد. خواستم ببینم که این برتر اندیشه بر نگذرد از چه چیزی؟ اندیشه برتر نگذرد. پروفسور، درود بر شما. خیلی سوالتون فنیه. یعنی از این که بشر در باره خداوند برتر از این نمیتونه بیاندیشه. خداوند در آفرینش عظیم کهکشان برترین چیزی رو که آفرید جان هست و در این برترین چیز که جان هست خرد رو آفرید بیشتر از این ما نمیتونیم در باره خداوند بیاندیشیم. بله درود بر استاد جنیدی و مجزی محترم آیا اسمای زیر پارسیس بستام بله بستام با ت ی دو نقطه است در پهلوی بوده ویشتن در فارسی گستهم هم شده که در په... تبدیل به شده وی تبدیل به شده شده بستان با ت ی دو نقطه با ت ی دستوار می نویسن اشتباس آه. با ت ی دو نقطه باشه اسم مولدی ایرانی همون گستهمه یعنی گسته بله میلاد میلاد پدر گورگین بوده و یه نام پهلوان ایرانی است ویش ویش یعنی ناحیه و یک بخشی از کشور که مثلا ما میر میرویش داریم یعنی میره یک ناحیه یک ویش یعنی ناحیه اینا رو آقای پشوتان از بروجت پرسیدن و تلفن بعدی رو نشستم من با هم پیام کردن می‌خوام با درود خدمت هممیهنان عزیز و سپاس از تمامی دستندرکاران شبکه خوب فرهنگ ببینم این بنیاد نیشابور کجاست ما چطور میتونیم از کتابای استاد بهرمند بشیم آیا شاهنامه تعریف خود استاد هستند که ما بتونیم تهیه کنیم یا نه بد میواستم ببینم احیانا چند واژه پارسی باستان کلمات عربی نفوذ کرده مثل گند به معنای سپاه که در عربی جند تلفظ میشه ممنون سپاسگزارم از مهربانیتون اخلاقی هستم از اندیشه شهری درود بر شما یک نویسنده خوبی داشتیم به نام امم جمعه شوشتری یک کتابی نوشته در حدود 400 روی یعنی برگ صفحه و در اونجا های فارسی که در قرآن کریم دیده میشه اونا رو شهر داده و خیلی برای شما که شما بدونید که واژه در پهلوی بوده مسجد یعنی خانه بزرگ بعد این معرف شده شده مسجد و بعد از روی مسجد سجده و اینها رو ساختن برای کی که مسجد داشتم و سجده نداشتند. وقتی که وارد بودکده می می‌شدن دو تا سنگ رو به هم می‌ذاشتن یعنی واجه مسجد ریشش ایرانیه واجه فردوس پایری دایزه آویسویس و فارسی بوستان یعنی دجی که پیرامونش دیوار کشیده باشه این در زبان‌های اروپایی شد پارادایس در زبان عربیم شد فردوس شما تو خود حدیث مفصل بخون از این مجمل وقتی که چهارصد صفحه در یک کتاب آجه های دخیل در عربی رو شخصی به نام جمعه شوشتری درورده. دیگه بعد ببینید که چقدر واژه از ایران به عرب رفته و من در کتاب داستان ایران در این باره گفتار خیلی گسترده ای دارم و دوتن از فرزندان ایران هم به نام آقایان شادمانی و آقایان دکتر جعفری مشغول هستند که این بیشتر از اما هم جمعه شوشتری روشن بکنم اما شما بله موز... یه پیامک دیگه هست این ادو... اشتبار... چند تا از این بله چند تا از این پیامک ها من برام همه رو بخونم یه دون از این پیامک هم بخونم, بخونم شما روی تلفون بخونم این هم میخونم درود در اوستاد جنیدی من دانشوی کارشنسی ارشد ادبیات هستم و خیلی ماهرم که با بنیاد نشاب استبات و همکاری داشته ها جمعه یا امکان امک آیا امکان پذیر هست اگر هست لطفا توضیح بفرمایید متشکرم نیلوفر از کرد. دو سایزی که تلفن زدم و این دوست و تلفن‌های پیمانکاری زیادی که تو این زمینه اومده 88 96 27 84 88 96 27 هاد و چهار این تلفن بنیاد نش بکه شما میتونید اونجا تماس بگیرید تصیل بالا ارتباطات که دارن با شما به معرف. شما مدرش میکنن نحوه همکاریشون و تمام داستان های بقیه سایت رو میتونید بپرسید پررسید خلاصه آن دوست گفتم در موده ساییر پیمیم من, من اینجای جمله به این لیلوفر بگم که بنیاد نشوب بود خانه فدو است متعلق به همه جوانان ایرانی تشری بیاریید در کارها شرکت بکنید خانه خودتون. و تلفونی میشویم بعد دوباره من پیامک میخونه. حالا داماد فکرت ابه هوناما هونان که وقتی ایران به یونان حمله میکنه هم کاریو با یونان میکنه که اسکنر با ایران انجام میده تو جنب و ایرانی ایرانی رو نماد برابریت می و خودشون نماد تمدن خودشون نماد این چقدر درسته و میشه در شک و تردید کرد یا نه یه سواده هم داشتم که توی یه کتابی خوندم که استانی جزء جاز ایرانی بوده و چون به دست رستم کشته میشه. بنابراین وانا این اسم رستم عوستان نمیاد آد از برنامه بسیار خوبه ده. شما یونانیان و اروپاییان که از یک پایگاه پایین شخصیتی برخوردار هستن در بار ایران دروغهای بسیار گفتن من شما رو راهنمایی میکنم به خوندن کتاب بزرگ یونانیان و بربرها نوشته روانشاد امیرمهدی بدی که 15 جلد کتابه و تمام این همه هم, هم معاخذ هم هم اروپاییه و نشون میده که اروپاییان اینها رو دروغ گفتند و پرداختند و چنین نیست و قسمت دوباره پرسیشون احنا یاد نداریم آه اسفندیار بود اسفندیار چنین بر... نبود اسفندیار کسی بود که میخواست که پادشاهی رو از پدرش بگیره و پدرش هم با او مخالفت کرد او رو به جنگ رستان فرستاد و در حقیقت این کشته شد باید بدونیم که اون چیزی که اوستا باقی مونده پنج جلد بیشتر نیست از یک جلدی که در زمان بلاش جموعی شد و اون یک جلد از هزار جلد کتابی که اسکندر گجشتگ فرمان به سوختن و آتش زدن اونها داد و بعد دریارخت و ما از این مختصر اگر نام رستم نباشه نباید داوری کنیم که اسمش در اوستا نیومده اتفاقا ما در موتون پهلوی از رستم به نام پهلوان خیلی خوب در یک چیزی هستش که در آمدن شاه بهرام و میبینیم که از رستم و پهلوانی او در حقیقت با بزرگ داشتیات شده چنین نیست در وقتی که داستان اسفند و براستم میخونید همه جا میبینید که رستم روی به خدا کرده ببخشید من پیامک شما رو الان میخونم میدونم پیامه که زودتر فرستاده بودید ولی ارز میکنم برای هفته آینده اگر خواستید البته سفر و رویه رو خدمتون آی دکتور میگن امشب ما دفتر دوم رویه 266 رو خوندیم هفته آینده از اینجا شروع میکنیم دفتر دویستو بیستو... دو نوود و چهار دویستو نوود و چهار شروع میکنیم اگر دویستو شست و شش تا دویستو نوود و چهار بخش افسوده زیاد داشت آره من بی‌معنا خط‌عذور نمی‌خونم فقط بعضی‌ها رو اشاره می‌کنه. حالا می‌گی سؤال اصلاً دارم بعد هفته آینده می‌پرسم این هفته نمی‌پرسم بسرم, بسرم. از <علا> می‌کنم خدمت شننده ها زیاد سوال کردم. با سلام و درود خدمت استاد جنیدی اسم روستای ما هست سمسکنده. می‌خواستم از استاد بپرسم که آیا این اسم پیشینه تاریخی داره یا نه. بله این سمسکنده رو من رفتم در نزدیکی ساریه و مدتی در, آره در بادله ساری من زندگی کردم و در اونجا تقاطی کردم و ضمنان چند شعر بلند در اون جنگل بادله ساری سرودم که یادگار زندگی منه ببینید این سه همین است که در سمرکند بود مسکنده پسونده کنده که یعنی جایگاه و خانه و ده مسکنده مست رو ما میتونیم بگیم بزرگ یا میتونیم باز یه پیشوندی به شماره بیاریم که معنیش روشن است ولی اون سه همون پیشوندی که در سمرکند هست. نه. سلام از میکنم خدمت های دکتر و مجری محترم برنامه. این شب زیبای پایزی رو خدمتون تبریک میگنم. دو تا سوال داشتم یکی در مورد اصهاب شعوبیه است که فردوسی یکی از اعضای اون بوده خواستم یکم بیشتر توضیح بدید دوم که من از شهرستان غوچان زنگ میزنم مخواستم لطف کنید در مورد بچه تصمیهش و اینکه میگن غوچان اسم قدیمش آساکه و به چه دوره برمیگرده توضیح بدید ممنونم از برنامه میشه شبتون بخیر درود بر شما خب در این باره شعبیه صحبت کردن و خیلی همین موضوع گفتند به گمان من که قرق در شاهنامه فردوسی هستن فردوسی از این غرور نبوده فردوسی خاص که کارنامه غرط و دانش و فرهنگ میوکانش رو به ایرانیان نشون بده و این کار رو کرد خب قوچان هم که اسم تازه‌ای است و پیشتر احتمالاً خبوشان بوده شانش شأنش پس من است که در کاشان و لوشان و من گفتم و در بدخشان هست یعنی جایگاه اما گمان من ممکنه که نام پیشینش همون زرست بوده باشه چون این ز... ز... اوچانه که با تلاب جنگ بکنه و بعد چون اونا در کوهستان بودن شکست بخورن بعدن میبینیم بوجنورد با روهام که بلوشستان باشه از جسو حمله بکنن و فرود رو میگیرن آقای زدی از شیراز سه بومین هفته است گفتیم این فرستادی. را فرستادید من میخونم در مورد ایل قشقایی پرسیدن آیا اصالت ایرانی آریایی دارد آقای ایردی از چی من درود به ایل قشقایی که هنوز هنوزم که هست اصالت خودشون حفظ کردند و کسانی ما در ایل قشقایی داریم که چهره های ملی خیلی, خیلی خیلی خوب بودند و در تاریخ اخیر ایران می‌درخشند و زمنان مثلا فرض کنید که در یه ایلی که به این ترتیب رفتار بکنه من کاملا نام اون خان رو به یاد ندارم ولی میدونم که در زمان قاجاریه به فرمان اون خان در تهران یک شاهنامه نوشته شد و نگارگری شد پس از اینکه این کار به پایان رسید خان قشقایی یک گروه سوار و در حقیقت دو زن و سورنازن و شیپورنواز فرستاد به تهران این گروه شاهنامه رو روی طبق بگذارن سر دست بیارن به, ایران، به سمیروم و تمام مدت در ها و شهرها سواران در خط به تاخت و تاز بپردازند و تیراندازی کنند از بابت شادمانی و نوازندگانم بنوازن. یک چنین کاری که خان فرید بغشقویی میکنه نمیتونه از ایلی برایت که اصالت ایرانی نداشته باشن بله. تلفن بعدی رو بشتید. سلام علیکم. داستان آراش در شاهنامه نیامده؟ متشکرم از اصفهان زهرایی هستم. درود بر شما آرش در زبان فارسی عرخش اومده یعنی ایرانی و شخصیت آرش در داستان‌های دیگر همون شخصیت منوچهره در داستان شاهنامه و میبینید که آرش بر فراز کوه دماوند تیراندازی میکنه و منوچهر هم پایتختش آمول جایی که تماماً در حوزه فرمانروایی اوست در این جنگ اصله برتر ایرانیان تیروکمان بوده و تورانیان توسط برانند بیرون در آرش به یک گونه نمادین که اینوز میگم سمبولی که به این ترتیب پرتاب یک تیر اومده در حالی که ماه و سالها ایرانیان از کوهستان‌های پتیشوارگر که همین اطراف آمول باشه تورانیان را از خاک ایران به کردن نمیدست تلفونهای دیگه شما رو پخش کنیم ببخشید ببخشید حالا هفته آینده ان مجددا تماس بگیریم با بحث میشه شما دوباره باز هم در ارتباط باشید با ما. باشید. یه سوال کردن که من خواهش می کنم این سوال رو هفته آینده توضیح های دکتر جوهدی در مورد افسوده ها پرسیدن که افسوده ها رو از راه تطبیق نسخه ها یافتن یا برداشت های شخصی خودشان است که من میخوام اگر بشه مفصل در مورد no, این چاشمان در هفته آینده در این برسونم. سپاس از شما شاد باشید پیروز باشید شما هم همینطور تو ببخشید درود به همه شنوندگانی که دل به این برنامه نهادن و در حقیقت کارنامه خلد و فرهنگ نیاکانشون رو گرامی می کنند کارنامه منم خوب بوده شما بیشت گرفتید آزاید خیلی رز این که گفتیم ما اومد کنار ساختمون ما کی کنار ساختمون نهار. من منظورم مردم نبیدم کنار ساختمون همکاران من در برنامه امشب صدا بردارون آقای علی طاهری و آقای نورالله Heidari، اثباتات آقای حمید فروزنده و آقای اسماعیل محمد نجات، حمانگی برنامه آقای سهراب ستایشمنش، حمانگی پخش آقای عبدالقاسم مظاهری و تهیه کننده برنامه آقای محمد رضا حاجی Heidari و من حمید رضا هدایتی را سردبیر و مجری برنامه بودم. شب بر شما خوش ایرانیان عزیز.